یاد بادان که ز ما وقت سفر یاد نکرد به ودایی دل غم دیده ی ما شاد نکرد آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول بنده پیر ندانم ز آزاد نکرد کاغذ این جامه به خوناب بشویم که فلک راهنمونیم به پای علم داد نکرد دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد سایه تا باز گرفتی زی چمن مرغ سهر آشیان در شکن تو ریشم نکرد شاید در پیک سبا از تو بیاموزد کار زن که چالاک تر از این حرکت باد نکرد کل که مشات سنش نکشد تقش مراد هر که اقرار بدین حسن خدا داد نکرد مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که بدین راه بشد شدیار و زمایا نکرد غزلیات عراقی است سرود حافظ که شنیدین رقه دل که فریاد نکرد